سکریه جوان و فرهنگ. به نام خدای ادب آفرین، آن یگانه مهربان سلام. بیشک همه ما افسانه ها رو دوست داریم شاید به این علت که افسانه ها به دوران کودکی بشر تعلق دارن براسته هیچ چیز بهت از این یادگار های زیبا و شنیدنی ما رو با پدران و مادران باستانیمون پیوند نمیده وقتی ای رو میخونیم یا میشنویم انگار سالهاست با آدمها سرزمینها من ماجراهای تلخ و شیرین اون آشناییم واقعا راز افسانه‌ها در چیه؟ در سادگی و روانی اونها؟ در پندها و عبرتهای نهفته در اونها؟ یا در لایه‌های های پر رمز و راز اونها؟ در برمیه این هفته هزار افسان، افثانه رو از مردمان سرزمین سربستان براتون نرم کنم با نام افثانه شلخته برگرفته از کتاب افسانه های مردم سربستان اثر دوک استفانویچ کراچیچ با ترجمه از مهین راتفور روزی روزگاری در سرزمین سربستان سه دختر در نزدیکی چاه عمیقی نشسته بودند و در حالی که مواظب گوسفندهای خودشون بودند نخریسی هم می‌کردند در این موقع پیرمرد ریش سفیدی از کنار اونها گذشت و با دیدن دخترها گفت آهای دخترها مواظب باشین مواظب باشین هر کس کش تو این چاه بیفته مادرش در همون لحظه به شکل گاو در میاد پیرمرد اینو گفت و به راهش ادامه داد و رفت دخترا که از این حرف تعجب کرده بودن دور چاه جمع شدن و هر کدوم بیشتر خم شدن که بینن چه چیز غیر عادی تو این چاهه که یه دفعه دوک دختری که از همه کوچیکتر و زیباتر بود افتاد توی چا گروب و افتاب موقعی که همه به خونه هاشون دختر دید که گاوی کنار خونشون ایستاده بلا فاصله فهمید که این گاو مادرشه که به این شکل در اومده اونو به همراه گوزفند ها و گاوهای دیگه به طویله برد و خودش از قصه تا صبح خوابش نبود و اشک ریخت راستی تا یادم نرفته بگم که اسم زیبای افسانه ما مارا بود مدتی از این ماجرا گذشت و پدر مارا تصمیم گرفت مجددن ازدواج کنه و این کار رو هم کرد اله اون با زنی ازدواج کرد که اون زن هم یه دختر همسن مارا داشت با این تفاوت که این دختر خیلی زشت و شلخته و تنبل بود و به مارا حسادت میکرد و به هر نحلی سعی میکرد مارا رو آزار بده و اونو عذیت کنه روزی از روزها صبح زود موقعی که مارا میخواست گله رو به چراگاه ببره نامادری کیسهای پر از کنف به اون داد و گفت آی مارا اگه امروز تموم این كنفها رو نریسی و گلوله نکنی حق نداری به خونه برگردی اگهم برگشتی حسابی تنبیه میشی فهمیدی دختر بیچاره همین که به چراگاه رسید به کار مشغول شد و همینطور که کنفها رو می رسید عشق میریخت و بالاخره هم از زور خستگی و نومیدی زار زار گریه سرداد گاوی که زمانی مادر اون بود در همون نزدیکی در حال چریدن بود همین که صدای گریه مارا رو شنید به اون نزدیک شد و به زبون اومد و گفت چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ مارا برای اون گفت که نامادریش از اون چی میخواد؟ اون وقت گاو اون دلداری داد و گفت نگران نباش من کنف و توی دهنم میذارم و میجوم از گوش من رشته نخ بیرون میاد فقط کاری که تو میکنی اینی که اونو گلوله کنی مارا با خوشحالی کارو توی دهن گاو گذاشت و گاو هم شروع کرد به جویدن کنف و بالاخره غروب و آفتاب مارا گلوله نخ بزرگی رو به خونه برد یا همون نامادری از دیدن گلوله نخ خیلی تعجب کرد و روز بعد مقدار بیشتری کنف به مارا داد اون روز هم مارا مثل روز قبل گلوله بزرگتری به خونه برد روز سوم باز هم نامادری مقدار بیشتری کنف به مارا داد که اونا رو گلوله کنه و بیاره و از طرف دیگه دختر شلخته و تنبلش رو پشت سر مارا فرستاد تا ببینی که چه کسی به مارا در گلوله کردن کنف ها کمک میکنه دختر در گوشه مخفی شد و دید که گاو کنف ها رو میجوه و مارا نخیلو که از گوش اون بیرون گلوله میکنه فوراً به خونه برگشت و اون چیزی رو که دیده بود برای مادرش تعریف کرد. شب وقتی پدرم را به خونه برگشت، نامادری با اصرار از اون خواست که سر این گاو رو ببره. مرد ابتدا قبول نمی‌کرد. زن اونقدر پافشاری کرد تا بالاخره اون رو راضی کرد که گاو رو بکشه. ما وقتی از این ماجرا خبردار شد، قصه خورد و دائم اشک میریخت. وقتی که توی چراگاه چشم گاف به صورت اشکالود مارا افتاد به اون نزدیک شد و پرسید: باز چی شده دیگه از تو چی میخوان مارا به گاو گفت که نامادریش چه خیالی دربارهش داره گاو اونو دلداری داد و گفت گریه نکن دخترم وقتی که سر منو بریدن و گوشتم و پختن تو از اون نخو ولی تموم استخونایمو جمع کن و پشت منزل زیر سنگ بزرگی دفر کن. هر وقت که گرفتاری و مشکلی برات پیش اومد من به تو کمک میکنم. دو روز بعد گاو سر بریدن و با گوشتون غذا درست کردن. اما مارا لب به غذا نزد و تا روزی که گوشت تموم نشده بود خودش رو با نون خالی سیر میکرد. در عوض از گوشو و کنار و رو جمع می کرد و وقتی دید که دیگه استخونی باقی نمونده اونا رو پشت منزل برد و زیر سنگ بزرگی دفت دویزها از پیه هم میگذشت مارای افسانه ما مشغول کار بود آب میآورد، غذا میپخت ظرف میشست جارو میکرد ولی اجازه نداشت که سر و صورتش رو تمیز کنه و لباس تمیز و پاکیزه بپوشه و همیشه ژولیده و نامرتب و چرک بود ناماداری و دخترش اونو شلخته صدا میزدن یه روزی یک مادر و دختر لباساگ زیبا و مرتبی پوشیدن و قبل از رفتن به کلیسا نامادری مقداری ارزن توی حیات پاشید و به ما را گفت آی شلخته اگه تا برگشتن ما این ارزنها رو جمع نکرده باشی و غذا رو آماده نکرده باشی تو رو توی سیاه چال حبس میکنم زن بعد به همراه دختر مغرورش از منزل بیرون رفتن با رفتن اونا را نگاهی به ارزنها انداخت و یه باره به گریه افتاد. آخه اون چجوری میتونست؟ اون همه دونه ی ریزو از زمین جمع کنه. اما، اما یه دفعه یاد حرف مادرش افتاد. با عجله به پشت خونهشون رفت و خودش رو به کنار سنگ رسوند. آه چه معجزه روی سنگ صندوقی بود که توش پر از لباسهای زیبا و جواهرات گرون قیمت قرار داشت. کنار صندوقم دوتا کبوتر سفید نشسته بودن. یکی از کبوترها گفت مارا هر کدوم از لباسها رو که در میخواد از صندوق بردار و بپوش. مارا با خوشحالی و ناباوری پرسید بپوشم؟ من؟ آخه من این رباسه گرون قیمت و چجوری بپوشم؟ کجا برم؟ من باید... کبوتر گفت میدونم میدونم باید ارزنها رو جمع کنی ولی نگران نباش ما دوتا اونا رو جمع میکنیم تو به کلیسا برو و قصی چیزی رو نخور وقتی برگشتی هم ارزنا جمع شده هم قضا آماده است نگران نباش برو مارای افسانه ما با خوشحالی لباسی رو که از ابریشم صورتی بود برداشت و پوشید و بعد هم به کلیسا رفت در اونجا مرد و زن به اون چشم دوخته بودن آخه اون توی اون لباس زیبا و گرون قیمت مثل ستاره ها می درخشید همه از اون همه زیبایی و سلیغه دچار حیرت شدن و هیچکس کس نمی دونست که این دختر زیبا از یه دفعه پیدا شده و در این میون پسر پادشاه که در کلیسا حضور داشت از دیدن ما را به وجد اومد. وقتی که مراسم دعا نزدیک به اتمام بود، ما را با عجله از کلیسا بیرون اومد و خودش رو به خونه رساند بله، همه چیز تمیز و حاضر بود و تو یه دونه ارزن هم تو خونه پیدا نمی‌شد. بوی مطبوع غذا هم توی فضای خونه پیچیده بود. مارا فقط فرصت کرد که لباسش رو عوض کنه و به آشپزخونه بره که مادر و دختر سرکلشون پیدا شد. اونا از اینکه همه چیز همونطوری که گفته بودن سخت به تعجب افتاده. یک شنبه بعد باز نامادری و دخترش لباس تمیز و مرتب پوشتن و غصت رفتن به کلیسا رو کردن زن قصد رفتن به کلیسا این بار هم مقدار زیادتری ارزن توی خونه پاشید و به ما را گفت آهای شلخت خانم ما به کلیسا میریم وقتی که بر میگردیم باید تمام خونه تمیز و مرتب باشه فهمیدی؟ غذا هم پخته شده باشه و همه ی ارزنها هم جمع شده باشه. و بعد زن تحتید اضافه کرد وای به حالت اگه این کارا رو نکرده باشی. بله. زن و دختر به طرف کلیسا براه افتادن و این بار هم مارای افصالی ما به طرف سنگ پشت خونه رفت و مثل دفعی قبل در صندوق باز بود و دوتا کبوتر کنارون نشسته بودن. یکی از کبوترها گفت مارا، سود لباس به پوش برو کلیسا، خاطر چند باشه، ما همه چیز آماده میکنیم این بار هم مارا با دقت لباس های توی صندوق رو نگاه کرد و بالاخره یکی از اونا رو که از تارهای نغرهی بافته شده بود انتخاب کرد و پوشید بعد هم به طرف کلیسا برافتاد توی کلیسا باز هم همه نگاه ها به طرف مارا برگشت مخصوصاً شاهزاده که چشم از اون بر نمی وزیر لب زیبایی و وقار مارا را تحسین می کرد وقتی مراسم دعا نزدیک به اتمام بود مارا بلند شد و با عجله خودش رو به منزل رسوند این بار هم همه چیز مرتب و تمیز بود مارا سری به آشپزخونه زد و دید که قزاق مطبوعی روی اجاق در حال جوشیدنه اون فقط فرصت کرد که لباسش رو عوض کنه که مادر و دختر وارد خونه شدند، و با دیدن آماده بودن همه چیز متحجب شده یک شنبه سوم بود که مادر و دختر بهترین لباساشونو رو به تنگ کردند و باز هم قصد رفتن به کلیسا داشتن نامادری مقدار بیشتری ارزن توی تمام خونه پاشی رو گفت آی شلخته امروز باید تمام این ارزنها رو جمع کنی همه جا رو جارو کنی لباس های چرک رو بشوری و غذا هم آماده کنی اگه تا موقع برگشتن ماسکلیسا کلیسا اینایی ای رو که گفتم انجام نداده باشی دیگه جات توی خونه نیست پس تنبلی نکن و کارهایی رو که گفتم درست انجام بده زن اینو گفت و با دخترش از خونه به طرف کلیسا با ما مارا دیگه معطل نکرد و با اجره خودش رو کنار سنگ رسوند صندوق این بار هم پر بود از لباسهای زیبا و گرون قیمت مارا از میون اونها لباس تلایی زیبایی رو که یه جفت کفش زریف تلایی هم کنارش بود برداشت و بعد مرتب و آراسته به کلیسا رفت. این بار همه از پیر و جوون و مرد و زن متوجهش بودند. شاهزاده که هر روز یک شنبه انتظار اون رو میکشید تصمیم گرفت که مارا رو دنبال کنه و اونو بهتر بشته در آخر مراسم دعا مارا با عجل از جاش شد و از میون جمعیت راهی برای خودش باز کرد که بتونه زودتر به منزل برسه اما از شدت عجله پاش به پله گیر کرد و یکی از کفشهای تلاییش به طرفی افتاد اون دیگه فرصتی نداشت که برگرده و اونو برداره اما شاهزاده که به دنبال اون می کفش کفشو برداشت تا به این وسیله بتونه مارای افسانه ما رو پیدا کنه همین که مارا به خونه رسید دید که مثل دفعای قبل همه چیز حاضر و آماده است و تمام ارزنها از توی خونه جمع شده مارا فورا لباسشو عوض کرد چند لحظه بعد؟ نامادری دخترش وارد خونه شدند و برای اینکه دل مارا رو بسوزونن از زیبایی دختری که شاهزاده عاشق شده و زیبایی لباس گرون قیمتی که به تن داشت میگفتند مارا کلامی نگفت اما در دل به همی اونا میخندید از فردای اون روز شاهزاده جستجوی صاحب کفش رو شروع کرد و هر خونه سر می زد اما این لنگ کفش اندازه پای هیچ دختری نبود برای یکی کوچیک بود و برای یکی بزرگ تازه دختر می بایست لنگ کفش رو هم به شاهزاده نشون می داد. بالاخره شاهزاده به خونه مارا رسید نامادری همین که چشمش به شاهزاده افتاد فورا مارا رو پشت هفری پنهون کرد و با چاپلوسی گفت خوش اومدین جناب شاهزاده من حتم دارم که این لنگ کفش اندازه پای دختر منه بله دخترم پاهای قشنگی داره و شعرهای زیادی رو میتونه بخونه و شما رو سرگرم کنه ما جناب شاهزاده از یه خانواده نجیب و با اصالتیم باعث افتخاره که شاهزاده با عصبانیت حرف نامادری رو قطع کرد و گفت بس کنید خانم من برای شنیدن شجر نامه شما نیومدم باید تموم شهر رو جستجو کنم و فرصت زیاد دارم فقط به من بگید که شما فقط یه دختر دارید اون کجاست؟ زن با حیجان جواب داد بله بله جناب شاهزاده یه دختر که به اندازه یه ده دختر شاهزاده فریاد زد دوباره شروع نکنید خانم؟ دخترتون رو صدا بزنید لطفا زن فورا دخترش رو که با لباس مرتب آراسته به انتظار ایستاده بود صدا زد و دختر جلو اومد و ادای احترام کرد با بایدن اون زیر لب گفت وای خدای من خدا کن این کفش متعلق به اون نباشه زن با دست با چگی گفت جناب شاهزاده من حتم دارم که این کفش شاهزاده فریاد زد سکت و بعد کفش رو به دختر داد که امتحان کنه اما تا انگشتانش هم توی اون نرفت شاهزاده با خوشحالی گفت خدا رو شکر خدا رو شکر!" و بعد پرسید آیا آیا توی خونتون دختر دیگهی نیست؟ نامادری فورا جواب داد البته که نه البته که نه اما در این موقع خروسی روی خمره پرید و شروع کرد بخوندن اولیقو، یه دختر اینجاست، پشت خمره، یه دختر اینجاست نامادری با دست پاچگید ا... جناب شاهزاده، به حرف این خروس دروگو و بر جنس توجه نکنید، اون همیشه اما شاهزاده، بی اعتناب حرف های اون به طرف خمره رفت و چشمش به مرای زیبای افثانی ما افتاد با همون لباس تلایه گرون قیمت و خیره کننده فقط پای راستش بدون کفش بود شاهزاده از دیدن اون به اندازه خوشحال شد که بی اختیار فریاد کشید آه خدای من خودشه اون خودشه همسر عالی من و دیگه احتیاجی به امتحان کردن لنگ کفش نبود اون مارا رو به قصر خودش برد و جشن ازدواج اونها با شکوه و شادی برگزار شد افثانه شلخته رو براتون نقل کردم از مردمان سرزمین سربستان برگرفت از کتاب افثانه های سربستان از دوک، سنوویچ، کراچیچ و ترجمه از خانم مهین رادپور مکسیم گورکی نویسنده معروف روسی درباره افسانه‌ها ها میگه افثانه ها پرورش نیروی تخیل نویسندن و اونها به نویسندیات میدن که مفهوم تخیلات شاعرانه رو در هنر درک کنند و مهمتر از اون کمک میکنند که زبان مرد نیاز شاعر و نویسنده و گنجینی لغاتش وسعت پیدا کنه هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار سویلا کریمی اجرا مهران دوستی صدابردار منیله قرقامی تهیه کننده زهرا عبدالله ساده افسانی دیگر به